را فقط خدا میداند با همچه چه حرفهایی میزنند دیروز که پیششان رفته بودم تا تا تعارفشان کنم از بس گرم صحبت بودند حتی متوجه آمدنم نشدند من اگر باشم شمس معمولا سکوت میکند و چیزی نمیگوید. طوری که انگار وجودم او را به خاموشی میکشاند. چه هفت جور قضا درست کنم، چه نان خالی جلوشان بگذارم، فرقی نمی کند. با حالتی یکسان تشکر میکند. کلن کم قضا است. همان که دلش ضعف نکند. اما این دفعه فرق میکرد. تا کمی از حلوای توی بشقاب را مزه مزه کرد یک دفعه چشمهایش برق زد و گفت چه حلوای خوشمزه است که را؟ دستت درد نکند چطوری پختی در آن لحظه نمیدانم چه به سرم آمد به جای آنکه از توجهش خوشحال بشوم عصبانی شدم گفتم برای چه می پرسی؟ چرا بگویم تو که نمی توانی انجامش بدهی؟ شمس سرش را آرام تکان داد. انگار به من حق می داد. منتظر بودم حرفی بزند. جوابم را بدهد. اما چیزی نگفت و همانطور ایستاد. کمی بعد از اتاق بیرون آمدم و تنهایشان گذاشتم. راستش این موضوع را فراموش کرده بودم، اما امروز صبح اتفاقی افتاد که باعث شد همه چیز دوباره یادم بیافتد. توی مطبخ داشتم مشک میزدم که یک دفعه صداهای عجیب و غریب از حیات بلند شد. بیرون که دویدم منظری عجیب دیدم. همه جا پر از کتاب بود. بعضی کتاب را روی هم چیده بودند و ستون درست کرده بودند. صدها جلد کتاب و دست نوشته این طرف و آن طرف پخش و پلا بود. توی حوز هم پر کتاب بود. آب حوز هم کم کم داشت میشد رنگ مرکب. شمس از توده کتاب هایی که جلو چشمش بود کتابی بیرون کشید. همین جوری ورقش زد بعد هم انداختش توی آب. نگاه کردم. دیوان المتنبی بود. همین که کتاب به سطح آب آمد، کتابی دیگر برداشت. این بار نوبت اسرارنامه فریدالدین فرید اتار بود. وحشت کرده بودم. کتابهایی را که شوهرم آنقدر دوستشان داشت یکی یکی نابود می‌کرد. کتاب بعدی قاموس الاعلام بود که از پدرش ارث رسیده بود. چون میدانستم مولوی شیفته پدرش است و این دست نوشته قدیمی را طور دیگری دوست دارد برگشتم و به شوهرم نگاه کردم. اما دیدم مولوی گوشی بی حرکت ایستاده با آنکه رنگ رخش پریده بود و دستهایش میلرزید دم نمیزد سر در نیاوردم مردی که زمانی فقط به این دلیل که کتابهایش را گردگیری کرده ام آنطور سرزنشم کرد رفته بود و به جایش یکی آمده بود که گوشه ایستاده بود و دیوانه ای را سیر میکرد که مشغول نابود کردن کل کتابخانهاش بود دهانش را باز نمیکرد که اقللا حرفی بزند اصلا عادلانه نبود. با خود گفتم: حالا که مولوی در این کار دخالت نمی کند من دخالت می کنم رو به شمس فریاد زدم و گفتم: آهای چه کار میکنی؟ این کتابها خیلی قیمتی هند. چرا میاندازیشان توی آب؟ مگر به سرت زده؟ شمس به من جواب نداد. سرش را به طرف مولوی برگرداند و پرسید: تو هم همینطور فکر میکنی؟ مولوی لبهایش را جمع کرد. لبخندی نامحسوس زد، اما حرفی نزد. رو کردم به شوهرم و فریاد زدم، چرا حرفی نمیزنی؟ مولوی تا فریادم را شنید، فوراً کنارم آمد و محکم دستم را گرفت. گفت، آرام باش کر را، خواهش میکنم، من به شمس اعتماد کامل دارم. این رفتارش حتما دلیلی دارد. شمس از بالای شانه نگاهی به من انداخت. آسود خاطر به نظر می رسید. پیدا بود اعتماد به نفسش کامل است. آستین جبهش را بالا زد. دستش را در آب فرو کرد و کتابهای توی حوض را یکی یکی درآورد. از حیرت دهانم باز ماند، چون هر کتابی که از آب در می آورد خشک خشک بود. پرسیدم، سحر است؟ جادوست؟ چطور این کار را کردی؟ شمس در کمال آرامش نگاهم کرد و گفت، برای چه می پرسی؟ چرا بگویم؟ تو که نمی توانی انجامش بدهی؟ در حالی که از عصبانیت می توی حیات تنهایشان گذاشتم و دوان دوان به مطبخ برگشتم. دیگر تنها پناهگاه هم مطبخ بود. و آنجا در میان ده ها بشقاب و کاسه و قابلمه و ظرف نمک و فلفل و ادویه روی زمین نشستم و گریه کردم.